با سلام خدمت دوستان عزیز در هر ردی مقامی که هستند دانشجو، استاد و همه مسئولین قطعاً کسانی که اینجا حضور دارن کسانی هستند که هم در حال حاضر و هم در آینده در واقع یادآور واژه امید هستند. امید البته نه جنس سیاسی، امید به معنی واقعی که همیشه در زبان فارسی معنی خودش رو داشته. و معمولا وقتی که تو این جمع ها قرار میگیرم و حس امنیت، دوستی، عشق می کنم، حس بسیار خاصیه که شاید تعدادش از جلسی که یا برنامههایی که به عنوان کنسرت شرکت می‌کنم، تعدادش خیلی کمتر باشه ولی انقدر کیفیتش زیاده که انرژی و نیروی که به من میده واقعاً باز تصمیم میکنم که سالیان سال انرژی خواهم داشت و کار خواهم کرد و اینکه خیلی خیلی احساس خوشوقی میکنم از اینکه اگر که هم نسلای من، در چهار دهه پیش که اینجا صحبته شد من فعالم چهار پنج دهه البته همیشه هر موقعی که در هر جمعی قرار گرفتم اکثریت با جوان ها بوده و همین رو منم همیشه جوان نگه میداشت و هیچ حسی از پیری ندارم هر چقدر هم کسیدن بالتر میگه باز جوانتر میشم به خاطر که اون امید تو دلم به صورت واقعی همیشه وجود داره و چقدر خوب که من سالها سران سفر میکنم به ایران و همین هفته پیش در بوشهر بودم هفته قبلش کرمانشاه بودم و همینطور همه همین شهرهای ایران وقتی که امروز با دوستان صحبت میکردیم خوبه که شما اینو بدونید که دانشجوی مشهدی، دانشجوی مشهدی نیست، دانشجوی ایرانیه و دانشجوی تهرانی و شیرازی و جورهای دیگر دانشجو تهرانی و شیرازی نیستند، دانشجوی ایرانی هستن. اگر که مسائلی دانشجوان عزیز این دو رنج بده یا خوشحال کنه، در واقع یک ایرانی رنج میکشه یا خوشحال میشه. پس وقتی که شرایط چون امروز موضوع موسیقی هست شرایط موسیقی آنچنان که باید درست نگاه کرده نمیشه اینجا بهش و شرایط خوبی نداره این شرایط شهر مشد یا دانشجویان مشد نیست شرایطی از بخشی از ایرانه و شرایط ما ایرانی هاست اینه که اگر که من بر حسب وظیفه و عشق اینجا حضور دارم به خاطر به نوعی همدردی یا همراهی با دوستان دانشجوی هموطنم هم دارم نه فقط مشهدی و مشهد جزئی از خاک ایران هست که خیلی هم ویجه واژه مقدس به هر شهری گفته نمیشه شهر مشهد گفته میشه و قطعا ما در تاریخ به این واژه مقدس نگاه های واقعی خواهیم داشت. مقدس در واقع از قداست مردم میاد و آن چیزی که مردم به عشق بیورزن احترام میذارن قداست اون شهر رو بالا میبرن مردم به مشهد و به اون چیزی که اسم مشهد روش هست واقعا احترام واقعی میذارن مردم تمام دنیا میذارن به خاطر احترامی که این شهر از نظر تقدسات داره ولی این فقط در حرف و یک در یک مورد نیست مردمی که مقدسات دارند اون مقدسات رو باید درک کنند و تا اینکه به طور شایسته در یک شهر مقدس زندگی می کنند مردمی که در یک شهر مقدس زندگی می کنند جز مقدسات وجودشون هم جز مقدسات. ما فقط با یک سمول مقدس نمی سازیم. همینطور که این بارگاه، این زیارتگاه در طی تاریخ مونده، این, این ساختمون به خودی خود نمیموند، یا این بنا یا این عظمتی که هست خب به خودی خود نمیموند. تمام مردمی که نسل زندگی کردن، این مقدسات رو به بعدی سپردن. و این احترام در دل و جان مردم، بدون که حتی بهش فکر بکنند کاشته شده از توفولیت اما اگر که برگردیم از نگاه کسانی که مرتب شعار مردم میدن نگاه بکنیم نباید مقدسات مردم را تقسیم بنده بکنیم و به سلیقه خودمون بگیم که پس مردم باید این نوع سلیقه را داشته باشن پس مقدساتشونه. آن چیزی که تمام ما ملت ایران را در مقدساتمون مشترک میکنه هیچ حرفی توش نیست ولی یادمون باشه که احترام انسان و احترام یک ایرانی هم جز مقدسات من نمیتونم یه آدم مقدسی باشم یا مروژ مقدسات باشم ولی به ایرانی ها و به هنرمندان ایرانی کنم من خیلی میانبور زدم برای اینکه رفتم تو موضوع و برای که خب با یه شهر مهم ایران کار داریم که اتفاقاتی توش میافته که میتونه شایسته این شهر نباشه. حالا از اینجا که فقط به گلهوی رو در واقع نگذاره اینکه برمیگردیم به خود موسیقی که تمام ملتهای دنیا رو شما وقتی در نظر بگیرید می‌بینید که به هیچ وجه مسئله موسیقی اینکه باشد یا نواشد یا خوب است یا بد است اصلا مطرح نیست هیچ لازم نیست بریم به کشورهایی که از نظر حالا همه نظرها پیشرفته گفته میشن یا امکانات خیلی خوبی دارن یا تاریخ مشخص دارن نیست همین کشورهای همجوار خودمون یعنی واقعا شما در هند که میرید موسیقی جزو مقدساتش دارن یعنی اصلا به هیچ حج و بدون موسیقی تعریف نمیشه خب اتفاقاً در کشور خودمون هم همینطوره ما میدونیم که در سال رقابت های زیادی در کل کشور گذاشته میشه که در واقع یک نوع رقابت و مسابقه هست که قاریان قران شرکت میکنن که با هم رقابت کنند اینا شرکت نمیکنند که آیه های قران رو تفسیر کنند یا نظر خودشون میگنام چیز قرار نیست اینا فقط شرکت میکنن که هر کسی با موسیقی بهتر اون قرآن رو خوند اون آیه ها رو خوند. هر چقدر با کیفیت بهتر یا کیفیت موسیقی بهتر باشه اثرگذاری بیشتر داره و اون شخصی که موسیقی خیلی خ... با موسیقی خیلی خوب آیه ها رو خونده در واقع تشویق م... میشه و جایزه میگیره حالا میتونه از هر جای دنیا هم شرکت کنه ما فکر کنم قبل از اینکه بیایم به مجاز بودن یا نبودن موسیقی فکر کنیم باید فکر کنیم که اصلا موسیقی چرا وجود داره؟ میشه هیچ تمدنی درش موسیقی نباشه و آیا همه کشورهای دنیا موسیقی درشون تحت نظارت هست و فقط یه ادهی باید تصمیم بگیرن که مردم چگونه موسیقی گوش کنند به هیچ آج جان نیست برای اینکه خیلی مسئله حساسیه مثل اینکه بخوایم در مورد پزشکی تصمیم بگیریم بگیم که خب هر کسی رو که ما عنوان بهش یا مسئولش می‌کنیم میتونه در امور پزشکی تصمیم بگیره اصلا همه چیز غیر ممکنه چون ما مربوط به سلامت جامعه میشه و مسئله شوخی بردار نیست اینه که قطعا به دانشگاه های پزشکی و به مراکزی که متخصصین رشته پزشکی هستن مربوط میشه که باید اون تصمیم در مورد جامعه گرفته بشه در مورد موسیقی جوامع پیشرفته، جوامع در حال توسعه، جوامع پس رفته هر کدوم میخوایید بگید باز اونجا هم همینطور نگاه کرده میشه یعنی اینکه که باید جامعه رو ما به کیفیتی برسیم که خود جامعه انتخاب داشته باشه تمام جوامع دنیا وقتی صحبت تشون می کنند هیچوقت یک دست نیست یعنی جامعه داره کیفیت م... های مختلف هست و قطعا حتی از نظر اقتصادی اگر نگاه بکنید کسانی که رفاهی بیشتری دارن میتونن از نظر تغذیه شرایط بهتری داشته باشند و کسانی که از نظر اقتصادی شرایط خیلی درستی ندارن از نظر تغذیه شرایط خوبی ندارن و در جامعه، وقتی که خوب طراحی بشه از نظر مدیریت اینه که ما جامعه رو به کیفیتی برسونیم که خود جامعه در مورد همه چیزش بتونه تصمیم بگیره و این تصمیم درست باشه و برای همینه که یک خرد جمعی به وجود میاد، نه خرد فردی اینه که وقتی که در مورد موسیقی یه چیز عجیب نیست، نه موسیقی تازه در ایران اختراف شده، نه در ایرانه که فقط بعد راجع موسیقی تصمیم گرفته بشه شما الان هر جای دنیا من نمیگم حالا مثلا کشورهای غربی اونام کشورهای خیلی از نظر اقتصادی قوی یا از نظر سیاسی قوی کشورهای اروپای غربی نه همین کشورهای همسایه خودمون نگاه بکنین هم احترام به مردم موقعی است که ما خودمونم شرایطی داشته باشیم در جامعه که مردم ساخته بشن از همین مدارس از آموزش ابتدایی شروع میشه که واجه هنر، هنرمند و اصولا معنویت که هنر در واقع سمبول معنویته هر جامعه که واقعا تکیه معنوی داشته باشه از نظر فکری، هنرهای مختلف و به خصوص موسیقی جایگاه خیلی خیلی بزرگی داره و فقط با مادیات نگاه کرده نمیشه و وقتی که نگاه بکنیم اگر که جامعه از ابتدا خوب ساخته بشه ما بعدا به وزارت ارشاد احتیاج نداریم یعنی مثلا منم کسی که 50 سال در موسیقی فعال بودم باید فلان کسی که الان در وزارت ارشاد حکم میگیره پشت میزی میشینه در مورد من یک کار من تصمیم میگیره آیا تجربه من داره؟ آیا شناخته من راده داره؟ و آیا حساسیت من به شرایط موسیقی در کشورم داره؟ نداره. اصلا اطلاعاتشو نداره. فقط با حکم اداری اومده اونجا. ما اگر بخوایم به مسائل خودمون به شکل انتقادی نگاه کنیم، یک فاصله ایجاد میشه بین مسئولین و هنرمند اگر که به عنوان هموطن نگاه بکنیم، واقعا مسئله ایران مسئله منم هست مسئله مسئولم باید باشه یعنی اینکه که قطعا در هر موردی باید کارشناسی دقیق بشه چرا ما به هنر که میرسیم فکر کنیم نیازی به کارشناسی نیست یا از کسانی کارشناسی میگیریم که خیلی شاید این عنوان خوبی نباشه ولی خیلی سرسپردگی دارند یعنی اینکه، هنرمند یک تعهد هنری داره نه یک حکم اداری در بسیاری از تصمیمات موسیقی یا بحثای موسیقی حالا غیر از این دانشگاه این که این هم اصلا جوز واقعا وظیفه خودم من در جمع شما شرکت کنم و در واقع نیروی انرژی خودم زیاد نکنم ولی خیلی جه بوده که ما واقعا دل سوزندیم بحث کردیم جدل کردیم که برای پیش برد اون هنری که اتفاقا ما اگر که کارشناسی کنیم به جایگاه واقعش میرسه و نیازی نیست که حالا ممیزی بشه یا مثلا مرتب از طریق شوراهایی که واقعا تخصص یا صلاحیت خیلی موقع ندارن کارا بررسی بشه یعنی اینکه که در هیچ جای دنیا وقتی هنرمندی حالا من با انظرم خودم نیست حالا بر ارساد هم دوره ها و تا اون های که در تاریخ ایران جاودان هستند، برای ارتباط مردم نباید مجوز و اجازه نامه داشته باشن که برای با مردم ارتباط برای ولی من خطاب به واقعا مسئولین کشور دارم میگم در هر ردهی که هستند ببینید ما تازه ده فجر فجرو پشت سر گذاشتیم یعنی چند ماهی است که گذشت و خیلی همیشه بحث است از یک نظر بسیار زیباست از اینکه ما یک ایامی داریم به عنوان ایام فجر پیروزی و در این ایام در واقع اصلش که ما یاد کنیم از کسانی که از جونشون گذشتن و از تیفای مختلف اجتماعی هم بودن. وقتی که میخواستن که به آزادی و به اون چیزی که ایدائلشون بود برسن از همه چیشون گذشتن. و الان سی و سال از اون زمان میگذره و ما قراره که هر سال یاد کنیم. من وقتی که از شهدای اون موقع یاد میکنم که همه ماها به طور محلوس نزدیکانی داشتیم که از دست دادیم. حالا چه بعدش در جنگ و چه قبلش موقع انقلاب خیلی از دانشجو خیلی از شاگردهامون خیلی از دوستانمون خیلی از همکار تو رفتن و خیلی از شوهدهایی که واقعا جونشون رو گذاشتن حالا ده روز قراره که یک یادبودی بشه خیلی این ده روز میتونم بار معنوی داشته باشی درسته. من برمیگردم نگاه میکنم واقعا تتصاف بخوردم که... چرا باید طوری باشه که من شخصا خودم از کسایی بودم که واقعا بودم فعالیت فاقیرات اجتماعی و حتی سیاسی ولی چرا رقبت نمی که اونجور که باید به این ده روز نگاه کنم از جملاتی که جملات قصاری که من گفتم اینه که موسیقی فقط ده روز نیست یعنی ما موسیقی رو بودجه بذاریم براش, براش خرش کنیم در ده روز و 355 روزش رو به موسیقی توهین کنیم شرایط بدی براش بذاریم و فقط این 10 روز به شکل جدی تبلیغاتی بشه. بشه داره. این یکیشه. آیا شما هیچ روزنامه‌ای در هیچ جراییدی هیچ چیزی خوندید که اصلاً راجع به ماهیت این 10 روز صحبت بشه؟ یا اینکه خوندید که فلان کنسرت چقدر فروخت؟ و فلان قرارداد چقدر بود همه چیز با مادیات سنجه شد و هنوز روزنامه هاش جوهره خوش نشد شما میتونید واقعا برگرد روزنامه چند ماه قبل رو در دعی فجر بخونید و میبینید که تمام امکانات دولتی در اختیار این که کی پول بیشتری میسازه در این ده روز و توی خبرها تیترهای بزرگ روزا می که فلان کنسرت فروخت تمام شد. بلیتها تمام شد. می‌دونید که اصلا این گونه خبرها که سالهاست در ایران متداول شده اینه که هیچ وقت هنری که کیفیت داشته و هنر به طور واقعی باشه اصلا با گیشه سنجیده نمیشه. معمولا فیلم خوب، قبلا یه ای داشت که نمی‌گفتن که این انقدر فروخ اون نه فروخ پس این خوب است هوازی است ولی الان اینطوری شده یعنی من نمی‌فهمم چیز مسئله معنویاتی که صبح تا شب شما پیچی رادیو تلویزیونتون باز کنید داره ازش صحبت میشه این کجاست؟ به بالاخره فقط در سی... میز میزگرد مسئولی نیست. این باید تو شهر دید اگر فرصت چرخیدن در شهر نیست، همین روزنامه رو مطالعه کنید مسئولین واقعاً باید دهیفهش با تومن ریال سنجیده بشه تازه من متاسب نیستم حالا اونا که خیلی متاسبند که ممکنه که اصلا به خیلی چیزان ایراد داشته باشند این یکی خیلی چیزی بزرگیه چرا باید تمام این ده روز صحبت این باشه که کدوم کنسرت چقدر فروخت و یا دستماس فرانی چقدر داد و اون وقت جالبه همه همه اصلا استثنان نداره. من اینجا جنبه قیبت یا پشتر همکارای خودم هم صحبت بکنن نیست. ولی اینجا به طور قاطع میگم. همه میگن چقدر میدی ما شرکت کنیم در ده این اولین سؤالی که گفته میشه. وقتی که وایمسی موزه میگیری که میگن معنویات این در روز کجاست که حتی در شعار هم دیگه وجود نداره من چون مربوط موسیقی رشته در موسیقی میشه در این چارچوب فقط صحبت میکنم در روید موسیقی ممکنه که به غیر از این ده روز به معنویات موسیقی صحبت بشه ولی به هیچ وجه در اون ده روز اتفاقا راجب فقط مادیات موسیقی صحبت میشه و همه چیز با مادیات سنجیده میشه ما در یک اصلی زندگی میکنیم که دانشجوی عزیز ما اینجا خیلی ماهرتر از همه ما نسل ما با ابزار امروز س و میدونن که مثلا انفجار خبر خبر خوب خبر بعد یا هر چیزی که در جامعه قرار که جاری بشه چگونه میشه از امکانات تکنیکی این زمان استفاده کرد و هر چیز درست یا هر چیز کذبی رو در جامعه رواج داد و ما الان میبینیم که مدت است که واقعا فکر اساسی بشه دو تا چیز باید فکر اساسی بشه یکی برخورد مسئولینه که حتی میتونه به صلاح یک مسئله منفی حتی از نظر سیاسی داشته باشه که الان باید, باید بهش اشاره میکنم. یکی دیگهش واقعا مسئله اینه که اگر که تمام مردم سرزمین ما موسیقی و هنر رو بخوان فقط با مادیات محک بزنن فاجعه میشه برای این جامعه فاجعه ممکن از نظر مسئول اصلا معنی نداشته باشه در این جامعه که من صحبت میکنم ولی اگر جامعه ای تا فرهنگ نداشته باشه اصن جامعه ای که تا آرامش نداشته باشه جامعه ای که تا لبخند روی صورت مردمش نباشه اون جامعه مریضه و اون جامعه حتی میتونه خطرناک باشه یعنی اینکه اگر ما ورد گشایی نداشته باشیم و دردهای ما رو هم جان بشه امروز ظهر وقت که صحبت میکردیم از همراهی بسیار بسیار خوب من اینو تو پرانتز بگم که خیلی من و دوستانم احساس خیلی خوبی داشتیم از اینکه اینقدر قلب مسئولین دانشگاهی و دانشجوها نزدیک به هم و حس خیلی خوبی دارن هم از دوستان دانشجوی این حس رو کردیم و صحبت کردیم و همینطور از مسئولین،, مسئولین دانشگاه که از یک فرهنگ خیلی خاصی برخوردارن فقط اون حکم که گفتن نیست یعنی یک باری داره و این میتونه میشه گفت که نادره من حتی حالا اشاره نمیکنم در چه به از دانشگاه ولی هفته یا در روز پیش ما سمینار خلاقیت داشتیم در دانشگاه تهران و به خصوص در دانشگاه در زیبا به هیچ وجه من ذهنیت مسئولین این قسمت رو اصلا نمیتونم با مسئولین دانشگاهی اینجا مقایسه بکنم تا از اونجا دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهرانه. ولی وقتی که وارد صحبت و بحث شدم دیدم شریع یه مقدار همون زمان دایره فشر فکر می‌کنه ببینید وقتی که با این ابزار سر و کار داریم بیایم ابزاری که شما بچه‌ها خوب میشناسینش، اصر کامپیوتر و اصر ارتباطات هست. ببینید چه گروه میشه از این استفاده خوب یا بد کرد. ما به تازگی که شاید تو این ده سال اخیر باشه یاد گرفتیم که در مورد هر چیزی با تبلیغات میریم. میتونیم جلو بریم. تو شهران وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که این اصطلاحا بنرها یا این تابلوهای بزرگی که زده شده خیلی زیادتر و زیادتر دارن میشن. بعضی به ظاهر فکر بریم که اون شهرمون فرهنگی شده. اخیرا هم یه چهار تا تابلو از نقاشی گذاشتن و که البته بیشتر حواس شدهن پرت میشه تا یه کاریکی کاریه ممکنن تصدف کنه. ولی اینا همه در واقع صندوق های پول شهرداری هست که در شهرها کاشته شده. خب از اینا میشه استفاده خوب یا استفاده بد کرد. ولی اتفاقاً بیشتر رو درآمد فکر می‌شه و بعد شما میتونید یک مثلا مسئله فرهنگی خیلی خیلی نازل رو اگر که سرمایه پاش بذارید میتونید رواج بدید میتونید در شهر تو چشم همه بذارید و یواش یواش توجیه کنید که این از بهترین نوع هنر هست که داره ارزش میشه اگر که هنری حالا به خصوص موسیقی اون امکانات اقتصادی رو نداشته باشه. می‌دونید که کنسرت‌های موسیقی بیشترشون فقط روی فروش بلید نیست که در واقع تأمین میشه، بلکه روی کسایی که حمایت می‌کنند. همین اصطلاح های اسپانسر دیگه تقریباً یک کلمه فارسی شده. من خیلی دوست فارسی اثبات کنم، ولی فارسی میگم که همه متوجه یعنی اسپانسر. که حامی مالی میخواد و خیلی از کنسرت هایی که بیشتر جنبه سرگرم کننده داره و یا موسیقی مردمی، حالا موسیقی پاپ نه به عنوان گیری من میگم چون که موسیقی پاپ هر جامعه موسیقی مختلف مصرف میکنه اما خب موسیقی پاپ یه موسیقی سرگرم کننده است قبل از این که ما خیلی بخوایم به جنب های هنریش رو که البته در موسیقی پاپ هم میتونه نگاه هنری توش ولی نگاه تجاری بیشتر هست. میبینید که های ورزشی یا مثلا اماکن بزرگ استفاده میشه که همون خودش درامتزایی زیاد داره. ولی به غیر از اون حامی مالی هم داره. چرا مثلا فلان خواننده پاپ که میخونه حتی راژیو تلویزیون یا تمام این تابلوهای شهر و رقبت تمام تبلیغات وسیعی میشه. شما میدونید که در مورد موسیقی در واقع هنری یا حداقل موسیقی سنتی یا موسیقی کلاسیک خودمون به کاری بشه، اولا که حامیه‌های مالی نیستن. حامی مالی یعنی اینکه اون سپانسر اصلاً چگونه فکر میکنند سلیغش چیه و میدونه که چگونه میتونه با جمعیت انبوه سرکار داشته و اون تبلیغات رو به کار بنسید. در هر صورت وقتی نگاه میکنید می‌بینید که در همه امور باز اون مسئله مادیاتی که صحبتشون دانه و <تصفح> کسانی که کس در ایران سرمایه دار هستند میتونم به طور وسیع مثال بذارن. مهم نیست به کسی بر چون در ایران به تنها کسایی که واجه محترم همیشه پسوندش داره تجاره میگن توجار محترم نیست ولی ممکنه به یک هنرمند خیلی واجه های بدی که در این شهر همات دابل هست گفته بشه ولی اگر که به یک تاجر در مشت بخواهم بهش صحبت بشه که هر چقدر پولش بیشتر محترمتر میگن توجار محترم یعنی این محترم فقط در این مورد خیلی خوب استفاده میشه به هر صورت شما می‌بینید که یواش یواش وقتی که حامی مالی و حتی مجوزها و مجوزهای حتی پخش در صدا و سیما و تمام اون چیزی که راه بازه برای نوعی موسیقی سرگرم کننده بازه و چنان تبلیغ میشه که اصلا کسانی که واقعا یک شناخت درستی از قبل مثل همین سنای شما از قبل اگر پای اساس شناخت در زمینه فرهنگ نداشته باشید شما فکر میکنید که پس اون چیزی که خیلی درسته همین همیناست که صبح تا شب ما در دیوار میبینیم و ایناست که تو فرهنگ ما میره در تمام دنیا الان اینو بگیم مثلا میگیم که اینجا شبا برق میره که البته حالا مدت است که نمیره ولی میگم خب مهم نیست در سوئیس هم فوز اساس هست یه دو دقیقه برق نه میره همه جا میره میگن که اینجا مثلا فلانجا با مردم بدرفتاری شده تمام صدا سیما فیلم های زیادی نشون میده که مرتد دارم مردم میزنه مثل اخیلا که فرانسه ششلق شده خب آره در همه جا این اتفاقات میفته اما در خیلی جاها این اتفاقا میفته تمام فستیوال هایی که در واقع بوجه رو یا سبسید پارسی سبسی چی میشو؟ روی رایا حالا همون که شما میگین دولت میده ببینید خیلی ما اهل موسیقی که مستقلا دعوت میشیم از فستیوال ها که معمولا تمام قراردادها یا تمام رفت آمد و اقامت و اینا که در سطح بسیار خوب خیلی از فستیوال حتی بلیت فروخته نمیشه یا فلان برنامه رادیویی مثلا در فرانسه ما رو دعوت میکنن بلیت خیلی سمبولیک به صورت قیمت خیلی ارزان گذاشته میشه یا اصلا بلیت فروخته نمیشه که مردم بیان ما رو رایگان دعوت نمی کنن. بهترین بهترین رو میبندن چرا این کار رو میکنن؟ مثلا موسیقی های سرگرم کننده خودشون کار خودشون می‌کنه و خیلی هم درآمدزاست که البته ما خوشبختانه می‌بینیم کسانی که روی هنرهای سرگرم کننده هم کار می‌کنند، ولی دارای فرهنگ هستن مثلا فلان ستاره سینما وقتی که خیلی شهرت داره و کم کم پولش خیلی زیاد میشه ثروتش میره در کارهای خیریه شرکت می‌کنه این یعنی خیلی متداول شده در کشورهای غربی و همین طور موسیقی و تمام رشته دولت ها مثلا میان میگن موسیقی دوره باروک یا موسیقی آنتیک یا موسیقی قدیمی مثلا اروپا یا اصلا همین الان موسیقی کلاسیک میدونید که خب برصد موسیقی پاپ در تمام دنیا هم درامت زاز و هم انبوه جمعیت همیشه مصرف کنندش هست در کشورهای غربی و اروپایی یا امریکا هم، ارکسترهای سمفونیکشون اگر که قرار باشه فقط با فروش در برنجا دچار مشکل مالی هستند و میشند. و اونها حامیان مالی دارند که دولت این دولتاشون این قانون گذاشته که وقتی که حمایت میکنن از مالیات معاف میشن و سرمایدارها تشویق میشن که حمایت کنن از هنرها. و شما ببینید که با اینکه از نظر درامتزایی کارهای خوب از آثار هنری در همه رشته ها اون درامتزایی رو نداره ولی سرفاز و هست برای اینکه اون برای جامعه برای فرهنگ جامعه مهمه ما اگر در ایران بشینیم ما اصلا دعوا به کسی نداریم ما که اصلا ساز و موسیقی سنبول صلح و عشقه اصن بی خودی با ما خشونت میکنه وقتی میخوان کنسرت رو به هم بزنن بی خودی لشگردکشی میکنه کافیه بیان میگن که ما اصن نمیذاریم شما اجرا بشی ما اصن جورا کنسرت کنسرتو میکنیم ولی اینکه وقتی که حتی این جمله گفته میشه تمام روان و روح و احساس آدم اون لحظه دیگه تحت شده و اون مساله قرار میگیره و خیلی خاطرات داریم حتما بعد تو کتابامون بنویسیم که در ایران وقتی که کنسرت اجرا می کنیم متاسفانه خب حالا همه ایرانی هستیم اب من دیگم احساس امنیتمون کمتره تا کشورهای خارجی یعنی غیر ممکنه که اگر وقتی که غیر از با تمام احترامی که وارد هر جا کاملا در امنیت کامل هستی و احترام کامل من میدونم که در ایران این چندین برابره ولی مردم یعنی این موسیقی این هنری که الان این افتخار الان به من داده که من در حضور شما باشم فقط مردم که پشتشن و اگر روزی برسیم که مسئولین هم واقعا این نگاه مردمی را داشته باشن از این پتانسیل مردم استفاده میکنن. اینجا مردم سرمایه گذاری روحشون و عشقشون رو میکنن حامی مالی نیستن که البته در خیلی از کنسرت‌ها که حضور پیدا می معنی حامی مالی هم پیدا می‌کنه ولی وقتی که حضور دارن، تمام به این چهل سالی که گذشت حالا سه سالم بیشتر روان داریم می گیم موسیقی خدا نکنه که دوباره به اونجا برسیم یه ذره آدم الان شک میکنه با شرایط کس وره شما برای حمله ساز باید مجوز می داشتید یعنی که ساز خودش یک وقتی که می که فلان خونه تیمی رو گرفتن میگفتن دو قبضه اسلحه و یک عدد تار کشف شده و این مسیر رو ما تهه کردیم وقت خیلی حیف یعنی اینکه من الان اگه که مثلا آثار و کارامو بخوایم راجبش تحضیح و تحلیل کنیم آنالیز کنیم و صحبت بکنیم یا پخش بکنیم چند روز باید اینجا باشیم ولی شما می که این بخشی از انرژی من بوده فقط. ما در ایران شدیم مدافع موسیقی. ما هنرمند موسیقی نیستیم. ما مرتب یک سپر جلونه که باید از موسیقی دفاع کنیم. اگر روزی بشه که هنرمندان بتونن ذهنشون رو پرواز بدن و زمینی نباشن اون وقت هنر موسیقی ایران به جایگاه واقعی خودش بیرسه. ما هی روزنامه رو برق میزنیم. هی به خصوص خبرنگارهای امروزی که خیلی این متاسفانه، خود باخته هستن نسبت عناصر غیر خودی هر چیزی که از غرب گفته میشه خیلی براشون بار بزرگی داره فلان چی چیه بین فلان چیچی یعنی هر چیزی که اونور گفته بشه یا تایید بشه ما فکر می‌کنیم که تا حالا ارزش نداشته حالا که اونا به ما توجه کردن ارزش پیدا کرده و در صورتی که هیچ کس به این مسئله نمی که اگه ما این هنرمندایی که داریم در رشته‌های مختلف، به این عرضش رسیدن که در جهانم مطرح میشن اصلش اینه که از کدوم جامعه میان و پشتبانهشون چیه؟ اولین بار که خود من این رو تجربه کردم سال 62 و دو بود که من از ایران رفته بودم من کشور آلمان بودم و بعد وقتی که وکیلم می‌خواست برای من اقامت اونجا رو بگیره که البته من حاضر نشدم به دلایلی که اون شرایطی می‌خواستن من چون همیشه می‌خواستم که برگردم ایران می‌خواستم اونجا بمونم بالاخره البته اونجا شروع کردم درس خوندن و اقامت دانشجویی داشتم ولی یه تسهیلاتی برای من می‌خواستن قائل بشن بعد وکیلم گفت که کافیه که <تصفح> پلیس آلمان بدون که شما چه سابقه ای دارید خب این سابقه رو کی به من میده ارزشون ملت خودم میدن مردم خودم. پلیس آلمان به من یه که آیا شما در کشور خودتون شناخته شده هستید؟ خیلی سال قشنگی بود برای اینکه من ۳2 سالم بود اون موقع. و اگه ده سال پیشم این سال می کرد می بله هستم. من از روزی که با دلم شروع کردم ساز زدن اولین ضد رادیی رو در سال ۱۴9 کردم. نونزده سال بود بعدش مردم در واقع حامی من شدن یعنی من تمام انرژی و از مردم میگردم برای همینه که موسیقی من همراه به مردم شد چون بدون اون معنی پیدا نمی کرد و میشه از مثلا تاریخ کارای من حتی مسائل اجتماعی رو دنبال کرد این مردمی که داریم صحبتش رو میکنیم همچنان هست واقعا بعضی موقع مثل همون فضایی که در پیروزا در اون خلاقیت داشتیم گفتم همین اش الان قشنگی ما الان مثل جزیره ای من اینجا یعنی همه معتقد به یک چیز مشترک هستیم و هنر موسیقی و براش بسیار بسیار احترام قائلیم و همین بچهای که میان الان اینجا لطف میکنن به من احسان لطف میکنن اینا کسایی هستن که میگن ما کارات بزرگ شدیم حالا نه فقط کارای و هنر موسیقی با آثار هنرمندای دیگه. اینی که وقتی که اون سال از من شد که آیا تو در ایران شناخته شده هستی؟ فهمیدم. چقدر خوب. کاش که من مثلا پونزه سالگی پلیس، پیش پلیس آلمان. 15 سال جلو میفتدم که این سال از من بکنن که آیا در کشور خودت شناخته شده هستی؟ یعنی آیا مردمت به تو اعتبار میدن که ما به شما اینجا اعتبار بدیم؟ همیشه هر هنرمندی که در هر جایی از این دنیا حضور پیدا میکنه میگن این هنرمند خیلی بزرگیه در کشورش مردم مثلا این کارو برایش میکنه مردم اینجور بهش احترام میذارن. اینه که ما گله میکنیم ما خسته این شیمان نمیدارم اعتراض میکنیم ولی در واقع ما یک پتانسیل خیلی خیلی بیشتری و بزرگی به اسم مردم همیشه داشتیم که الان سنبالش اینجا هست که چهره های جوان مثل شما هستند که مطمئن باشید که لازم نیست نگران باشید ما فقط باید انرژی بیشتری بذاریم یه مقدار انرژی موضعف لازم داریم که این به صدا عشق خودمون رو جلو ببریم و اتفاقاً ما معتقدیم که اگر میخوایید که معنویت در موسیقی در جامعه واقعا به طور تو روح و جون مردم باشه باید موسیقیش موسیقی فاخر و موسیقی باشه که در قلب مردم هست یک جنبه دیگه هم من بگم چون احساس می کنم که واقعا اینو به عنوان یک موسیقیدان به مسئولین باید گوشتد بکنن. اینه که ببینید الان این روزا یه موقعی بود که اگر یک کنسرتی لحق می شد یه اتفاق خیلی عجیب بود همه جا می پیچید دردن که الان نمی پیچه ولی کم کم این موضوع داره عادی میشه. من به شوخی زار گفتم که اخیرا این فرقهایی که ارشاد میده برنامه‌گذارا امضا کنن دو تا جمله داره یکی این که من متعهد میشم این کنسرت رو اجرا کنم چی کنم یه جمله هم اضافه کردن که من حتما قبول میکنم برای لغو کنسرت یعنی هم اجرای کنسرت مجوز میخواد که شما امضا کنین هم لغوش یعنی کم کم لغوش هم لغو بشن بعد امضا اما خارج از این شوخی چرا به این مسئله فکر نمیشه که و اون ناهمه اجتماعی و حتی درگیری‌های اجتماعی تا رفتن حتی حضور یعنی ایستادن در مقابل هم میتونه در جامعه ما حتی خطرناک باشه به خاطر اینکه شرایط بسیار بسیار حساسی در منطقه داره اتفاق میفته که یک مسئله جهانی هست و ایران کشوری است که امنیت توشه کشوری است که قدرت داره و این امنیت رو نگه داشته میدونید که بر ما اصلا این امنیت وجود نداره. خب این خیلی راحت به دست نیماده این برای همه ما ایرانی ها افتخاره ما افتخار می‌کنیم به همه اون کسایی که با جنودل امنیت این کشور رو حفظ می‌کنن. اما فکر نمی کنید با یک قفلت کوچیک ما کم کم این نفاق رو داریم به وجود میاریم ما ملت ایران داریم احساس میکنیم یک نفاقی بین مسئولین هست که وقتی که رئیس جمهور انتخاب میشه وقتی که وزیرش انتخاب میکنه فقط اون وزیر برای رئیس جمهور اعتبار داره چون وقتی که حکمی رو امضا میکنه یا مجوزی رو امضا میکنه خارج از اطوای خودش هیچ ارزشی نداره برای اینکه بهش بها داده نمیشه و آیا تمام دنیا دنیایی پیشرفته از احترام به قانون نمیاد یعنی هر کشوری که درجات فرهنگیش بالا باشه احترام به قانونش بیشتره شما شاید خیلیاتون به خارج از ایران سفر کرده باشید مثلا مسئله رانندگی همین فکر کردن که اون آمریکای اروپایی ذاتاً اینجوری به دنیا آمده که اصلا به این مرتبی و خوبی رانندگی کنه و حق تقدم رو کنه البته خب این از مدارس آموزش داده میشه و فرهنگش تو جامعه رشد میکنه ولی قانونم هست شما این فروشگاه های امریکا میده یه موقع قق بره چقدر توش دزدی میشه چقدر توج می این اینطوری نیست که همه نشستن به قانون احترام میذارن قانون سختگیری میکنه. قانون اجرا میشه. فلان شهردار کجای تو امریکا بود؟ خیلی شهردار محو خوبیه قفلتن یک خلاف رانندگی خیلی جزئی مثلا یه جایی ترمز زده بود فوری پلیس اومد جریمهش کرد اینجوری اینجوریه جریمهش کرد و هر دوام با هم تشکر کردند و چون که قانون رو اجرا کردن همون کسی که قانون راجبش اجرا شد تشکر کرد همون که قانون رو اجرا کرد ما مشکل اون اینه که وقتی که میخوایم یه کار اداری انجام بدیم بعضی ها بلدن، ما نمیدونیم اون زیرمیزی رو باید با چه ادبیاتی بگیم که مثلا کار اون را بیفته، چون بدون اون اصلا نمیشه ولی او هم خودش برای مراجعه کننده یک مهارتی میخواد که حالا قبلا میگنم پول چایی، ولی الان خیلی علنی باید اصلا شاید بشینی قرارداد ببندی برای اون مسئله زیرمیزی حالا به هر صورت قطعاً مسئولین کشور میدونن که قانون موقعی خیلی ارزش داره موقعی مهمه که خود مسئولین اول قانون رو رعایت کنن. ظنن آیا احساس خطر نمیکنن که این جریانات خود به خودی به قول خودشون خودشون میگن خود به خودی دیگه. ما قبول میکنیم که مثلا یهو 100 نفر موتور سوار یه جایی می‌ریزن یا اینو نکنه یا یواش یواش خشونتی بینشون اتفاقی افته بالاخره توهین به ملتی که وقتی بیلی تهیه کرده احساس نوامنی بکنه وقتی که میاد هر جور توهینی بهش بشه خب این احساس عدم امنیت یواش یواش یک خشونتی به وجود میاره و این خدای نکرده ممکنه که مردم رو مقابل هم قرار بده و آیا بیایید واقعا در شرایط حساس کنونی فکر بکنیم به این مسئله که آیا این باز نمیشه که خدایی نکرده تبدیل به یک خشونت مثل جنگ داخلی بشه حتی ما قفلت میکنم، میگیم نه چیزی نیست و نه اینا که رقمی نیستن و سازی میزنن. حالا من برای احترام به رشته خودم نمیخوام واجه هایی که بعضی از مسئولی استفاده میکنن به زبون میارم. ولی فکر نکنند که اتقدر به جامعه کم به ها اگر که یک روزی به نظر آن از مراجع واقعا بالا بیان بگن که بیاید بگید که کیا طرفدار موسیقی هستن و کیا اصولاً با موسیقی رابطه نزدیک دارن جمعیت خیلی زیادی خواهیم داشت و یعنی اینکه بسیاری از شهرها وقتی که کنسرت های بزرگ مجوز داده نمی‌شه نگرانند که از اینکه جمعیت زیاد میاد میدونید که قانون هست که بالای هزار نفر مجوز نمیدن در ها و یا خیلی به جنبه‌های امنیتی داره ولی <تصفيق> فکر کنن به این موضوع اینجور نیست که اگر که من و خانوادم مخالف موسیقی هستیم یا به نفع اونه که به نفع مخالف موسیقی باشیم فقط موسیقی در این خانواده این دوستان و مسئولین خلاص نمیشه این یه ملتی پشتشه این ملت هویتشه، عشقشه ایمانشه شما الان تمام تو همین خراسان که واقعا سنوال که تمام دنیا دنیای موسیقی شناس موسیقی خراسان از نظر تاریخی و کیفیتی جایگاه خیلی خاص داره این فقط این نیست که مثلا اگر شما از یک هنری جلوگیری بکنید یا اگر از یک هنرمند هنرمندی جلوگیری بکنید یه ادعی کمیان این در واقع شما جلوی بخشی از بخش بزرگی از ملت ایران ایستادید ما دیگه هم داریم که ممکنه یه موقع برن تو صفحه مخالف موسیقی وایسن ولی قلبن اینجوری نیستن بالاخره یه مقدار حالات مصلحتی و یا تظاهر هم توی داستان هست که من من موقع ایمانم قویه که مخالف موسیقی باشه در هر صورت من واقعاً این هشدار رو میدم این ها و به هم زدناش رو دست کم نگیرید و زودتر تکلیف قانون رو را مشخص کنید قانون هر چیزی گفت و اگر در مجلس تصویب شد اگر قرار شد که موسیقی حرام باشه و وجود نداشته باشه ما قبول می به جای اینکه رأی مردم که در سمبولش در مجلس هست اونجا به رأی گرفته بشه و واقعا رأی مردم باشه ولی من قاطعانه میگم که رأی مردم قطعا حمایت از موسیقی است و ترویج موسیقی درست و خوب تا مهرو محبت و فرهنگ این جامعه ارتقا پیدا بکنه خیلی متشکرم